تبریز، و که پنج دقیقه بختارن. بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک بنیانگذار انقلاب جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام به یاد و با عرض تسلیات به خاطر شهادت شهید بهشتی به هفته و 70 تان از یارانشون من به سرعت مطالب منو خدمت شما بزرگواران باران عرض میکنم با تایید بر قانون مداری و بیانات مقام معظم رهبری بر اساس همون قانون دلم میخواد چند تا حرف بگم خدمت شما شهید بهشی میفرماین که من بر خرد ساده تلخ سادقانه رو بر شیرینی بر منافقانه ترجیح میدم حضرت علیه السلام شهید متحری در کتاب داستان راستان مثالی از حضرت علی و یک مسیحی رو میاره که کار به دادگاه میکشه به خاطر زرهی که از حضرت علی گم شده بوده و دست مسیحی بوده در دادگاه حضرت علی که معصومه محکوم میشه و نمچن شاهد نمیتونه بیاره مسیحی آزاد میشه یعنی علی هم در دادگاه باید حکم داشته باشه و بتونه شاهد بیاره تا حرفش رو به پرسی بنشونه در ای که ما زندگی میکنیم راحت به هر کسی دلمون مخواد تهمت میزنیم، افترا میبندیم بدونیم که به دادگاه رفته باشیم و بعد آبرو رو میرزیم و بعد میگیم همه چیز رو باید درست ببینیم و قانونی و باید قانونی دید حضرت علی علیه السلام برنامهش به مالکشتر میفرمایند که حمل هواک و شخ حد نفس کم مالا فا اینش شخب نفس از انصاف منحافی ما حب بدو کره هم حوای نفسش بگیر و جلودار در حقیقت عملت باش شخب نفس یعنی اینکه که انصاف منحافی ما حب بدو کره ها. انصاف رو مراحت کنی در اونی که دوست داری و اونی که دشمن میداری انصاف رو مراحت کنی وشه قلبک رحمل رعیه و محبت الله هم و لطفه با تمام وجودت به مردم مهر ببست عشق ببست از مردم دفاع کن فلا تکولن عليهم سب و انزاری هم تختل مردم برای بر مردم مثل یک اس... حیوان وحشی نباش که به جونشون بیفتی و لطپارشون بکنی فنده هم این مردم دو دستن اما اخون لکف دین اما نزیرون لکف الخلف یا برادر دینیتان یا خلقات با تو برابرم یفرتون من همون زلل و تاردون همون الالب گرفتار میشن مشکل دارن خطا میکنن عمدن و یا صحبن حاطه منافکه و سبحک بگذر از اینا با رحمت و گذشت با اینا برخور کن اینا بردون باید با گذشت و مردون برخورد کرد صحبن و عمدن اگر اشتباه بکنن فقط در آخر میاد میگه فقط است... استکباک الله و ابتلاک به اینطور داریم به این امتحان میکنیم ولا تنبه ولا علاقف ولا تنبه و لاتش علیا با دقت و دقت ترتیب منده و لاتحکم نمی نیم مؤمر را آمر میتونی گذاش کنی گذاش کن وقتی میتونی مداخله تم نکنی تحریک نکنی نظری ندار نگو من آمینم آمر میکنم دیگران تعبیر بکنم و لاتحکم نمی نیم مؤمرون آمر فوت من آمر میکنم هر کس داشته در میارم این مردمه با مردم باید مثل مردم برخورد کرد مثل انسان برخورد کرد و با انسانیت اگر ما راه علی رو بدیم حرف علی رو گوش بدیم منصفانه به همه گوش بدیم و مثل یک انسان دوست و دشمن خودمون رو هم انصافانه باش برخورد میکنیم قطع این تمام ها میخوابه تمام مشکلات هست میشه ولی وقتی که جانبه یکی رو بگیریم فقط یک صدا بلند بکنیم و اجازه ندیم دیگران حرف بزنن و هر که حقص زد اند بهش وقت معلوم چه اتفاقی می حالا هر چه هم فریاد بکشیم که اصلاحش بکنیم اصلاح نمیشه انصاف رو باید مراهات کنیم صدا و سیما باید انصاف رو مراهات سیستم های نظامی و امنیتی باید انصاف را مراهات مکنن ما حق نداریم خلاف قانون تا قبل از حافظ و ببینید اگر ما هستیم هستین ملت شریف ایران بگانند این پیام مولا حضرت علی است این گفته رفتار رفتار علی خودتون قضاوت کنید بینی به بین الله ما علی گونه عمل می‌کنیم یا خودمون بر اساس نگاه خودمون گروه خودمون و دسته خودمون عمل می‌کنیم این قضاوت است که ملت باید بکنه شما هم باید بکنید و این است که خداوند بین ما و شما و آخرت باحت کرد نه اینکه که ما رو سرم فرد بکنیم بلنشی مورد چید دلم خواست بگیم هرگی خواست دو دو چار اکدار و سلام